سلام، شما قسمت 18 همه پادکست رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنام است نمایشنامهی که در این قسمت خواهید شنید فتحنامه کلات اثر استاد بهرام بیزاییه. قبلا از استاد بیزایی ما نمایشنامه پهلمان اکبر میمیرد رو در قسمت دوم روایت کردیم. حالا در این قسمت دوباره فرصتی شد که سراغ بیزایی نام پر اعتبار تاریخ نمایش ایران بریم. این نمایشنامه در سال 1361 نوشته شده، و در سال 62 توسط انتشارات دماوند به چاپ رسیده ولی هیچ وقت اجرا نشده اما نسخه که ما از نمایشنامه در دسترس داریم توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ شده که آثار استاد بیزایی رو به صورت تکی چاپ میکنه توصیه همیشگی من اینه که اگر نمایشنامه‌ای که در این پادکست میخونیم رو دوست داشتید تهیه کنید و خودتون هم دوباره بخونید اما ما در اینجا سعی می به صورت کامل داستان نمایشنامه ها رو براتون روایت کنیم که اگر نسخه اصلی رو هم نخوندید، چیزی رو از دست نداده باشید. اما در مورد فتحنامه کلات، اصرار من به خوندن نسخه کامل نمایشنامه دوچندانه. چرا که استاد بیزایی با جزئیات و شخصیت پردازی بسیار دقیق و ظریف این نمایشنامه رو نوشتند، و علا تلاشی که کردیم همچنان فکر میکنم اگر این پادکست رو شنیدید و دوست داشتید نسخه اصلی نمایشنامه رو هم تهیه کنید و بخونید. نمایشنامه در واقع به صورت کلی داستان دو سردار مقل و رقابت بین اونهاست که بعداً با اضافه شدن شخصیت آیبانو بر پیچیدگی ها و روایت این نمایشنامه بیشتر واقف خواهیم شد. هر کدوم از سرداران مقل ده سردار هم رزم دارند که نام اونها از بین اسامی ترکی انتخاب شده. با توجه به بودن من با بعضی از کلمات و اسامی در نمایشنامه اشنامه لطفا اگر خطایی بود تذکر بدید و عذر من رو موجه بدونید. من تلاش خودم رو کردم تا جایی که میشه معنای درست کلمات، تلفظ درست کلمات رو پیدا کنم ولی باز ممکنه اشتباه بشه. همچنین نمایشنامه یک شخصیت قصه خان هم داره که من برای اینکه اصالت نمایشنامه حفظ بشه موقع خوندن توضیحات قصه خان اسمش رو ذکر می‌کنم ولی شخصیت خاصی نیست و فقط گاهی پیداش میشه و توضیحاتی درباره اتفاقات و شخصیت‌های نمایشنامه میده همون راوی و شبیه همون کاریه که من در تمام قسمت‌های این پادکست براتون قبلا انجام دادم خب اگر این پادکست رو دوست دارید شبکه‌های اجتماعی اون با الف رو دنبال کنید و اگر دوست دارید در تولید پادکست سحیم باشید میتونید از درگاه هامی باشه کاست که آدرسش در توضیحات اپیزود قرار گرفته از پادکست حمایت مالی کنید درباره داستان و جزئیات نمایش نامه در پایان این قسمت بیشتر صحبت میکنم و قبل از اینکه وارد روایت این نمایشنامه بشیم باید از امیر تهانی عزیز تشکر کنم که این نمای بسیار زیبا رو انتخاب کرد و متن این اپیزود رو برای ما نوشت. بشنوید فتح نامه کلات اثر بهرام بیزایی. خیلی ها توصیه یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه. این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم. ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حسلش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگهی دنبالش نرفتیم اسپانسر این اپیزود پادکست علف خونیاگره خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنام و با تجربه است توی خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگ درام و سازدهنی پیدا میشه علاوه بر اینها میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی خونیاگر برای آموزش های آنلاینش نیمبه هاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید. اگر مشکلی داشته باشید یا سؤالی هم براتون پیش بیاد سایت مستقیما شما رو به استادتون وصل میکنه. لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم. خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی. بشنوید از قصه گوی کهن قصه بشنوید قصه دو دلاور که روزگار مانندشان ندیده نامشان توی خان و توقایخان، این فرمان روای کلات آن حاکم بلخ بامیان این سردار هفت سر قابض روح آن خان اسیر کش ملک الموت اینک بشنوید این تویخان است که میشمرد آنگاه که با زره خونین پنج سر بریده بر دوش دارد و پنج سر دیگر در دستانش تویخان میشمارد 6 ردیف ده، 7 10 8 10 9 ردیف ده، یک ردیف 100 این هم توغای خان است که میشمرد آنگاه که با ذرهی خونآلود اسیرانش را در توری بزرگ به دنبال خیش می کشد. تو غیخواان میشمارد. صد دوم این می شود 200. پس ابتدا کنم به یک ردیف دیگر ده، ردیف سوم ده، ردیف چهارم ده قخواان میگوید چه میشه نعش کشته ها. زمین سرخ نلالزار که صحرای کشته هاست یک به یک میشمرند تا آنکه هر دو به 360 میرسند ولی آخرین آخرین نش از آن کیست تویخان گوید من کشتم و توقایخان هم میگوید من کشتم تویخان گوید که هنوز صورت اندکسالش را به یاد دارد که از وحشت دو پاره شد، آنگاه که فریاد کشید مادرم و توغای خان نیز بران است که آخرین جنازه از آن اوست به این نشان که با گرزش چهار ستونش را شکسته است نه این حرف آن را میپذیرد و نه آن حرف این تا بران میشوند که داوران گرده هم تا آنان بگویند که کشته از آن کیست اینک بشنوید سخن داوران را ما خبرگان می‌ترسیم چون اگر راست بگوییم یا اگر اشتباه کنیم در هر صورت یکی از آن دو از ما میرنجند و سپس ما خود از کشتگان خواهیم بود همه چیز اندازه هم تقسیم اسیران تقسیم قناعم و اینک خشم دو سردار توی خان به داوران می گوید که صحبت از یک جسد نیست صحبت از افتخار یک جنگ است اما داوران درمانده میگویند که نمیتوانند بین آن دو یکی را برتری دهند تو غای خان اما با خود به چیز دیگری میاندیشد او با خود می گوید توای خان تو میخواهی این جسد را از چنگم در بیاوری همانطور که آیبانو را در آیبانو همسرت نیست بلکه زنی است که از من رو بوده ای آن که در زیبایی از زنان سر است و تو فقط به این دلیل صاحب او هستی که به نیرنگ ساعتی از من زودتر رسیدی قصه خان میگوید حالا فصل سور هاست در این پیروزی ساز و رود و شراب و سرود صد سر اسب و 300 گوسفند از تمام دشت بوی خوش بریان به هواست توی خان برای بزم این فتح توغای خان را به دیار خود می‌خواند به کلات با خود می‌اندیشد که این چنین نامش در تاریخ بیش از توغای خان خواهد رفت توغای خان می‌پذیرد و به قایبابات یارش می‌گوید که چرا می‌خواهد بلکه یک نظر آیبانو را ببیند که هنوز دلش پیش اوست قایبابات به او میگوید که آیبانو را نخواهد دید چون که او را به حسار امر فرستاده جایی در دامنه که ییلاقش میخوانند اما تو قایخان به قایبابات میگوید و این مرا دیوانه میکند من به تلافی آنچه این ملعون با من کرده است به این زیافت می روهم. او سردارانش را دینکیز، اینانچ، بایاروت، یولدوز، قنقرات، قاراتخان و قایبابات را میخواند تا هایشان را بردارند و اشتهای خود را با خوردن خون میزبانشان سیر کنند. و فرمان می دهد چون بر کلات چیره شدند قایبابات آیبانو را به کلات بیاورد توی خان نیز از آن سو در این اندیشه است که سفره را از خون یاران توغای خان رنگین سازد، چرا که از سر این اختلاف نمیتوان آسان گذشت. توی خان از سردارانش گرخان، گاراخان، نایمان، سلدوس، ارلات، اویرات، اورخان، واتوات، قایدو و یامات، میخواهد که سلاح برگیرند گورخان سردار تویخان میپذیرد هرچند که میگوید قتل مهمان را خوش نمیدارم دینکیز سردار تویخان میپذیرد هرچند که میگوید قتل آنکه نمکش را میخوریم به خیر و خوشی نمیانجامد میخ چادرها را میکنند و سوار بر اسبهایشان به کلات میروند با رفتن سرداران زنی به میدان میآید بر دوشش چوبی است که بر آن چوب چهار سر است سرها نیز گیسوانی بلند دارند به اندازه‌ای که بر زمین کشیده میشود. همه ژنده و تیره او میگوید: ما پنج خواهر ابدی خسته پیاده درمانده چهار مرده فقط یکی زنده در جستجوی چه سرگشته کیم و زمزمه کنان با خود ادامه می دهد منجی بر سر دار رئیسشان خونخار سپاهیان قطدار هو هو هو شش سردار تویخان می رسند و به دیدن زن حیران می شوند یامات یکی از سرداران تویخان از او می‌پرسد تو چه می‌کنی؟ زن پاسخ می‌دهد زندگی. نایمان می‌پرسد تو کیستی؟ و زن پاسخ می‌دهد زنده ای، زندگی ندانسته. مرده ای، گور خود گم کرده. قایدو می‌پرسد به کجا می‌روی؟ و پاسخ میشنود به مهمانی، خوش زیافتی از سرهای سرداران. یامات میگوید آری توقانیان زن ادامه میدهد هی دفن میکنم و هی دفن میکنم و هی دفن میکنم امیدهای رفته پی روز رفته را هی قرض میکنم و قرض میکنم و قرض میکنم از فردای خود امید سرداران با هم میگویند او از آلانهاست و تعنهاش با ماست زن میافزاید کاش، دیدار شمایان نیامدی، کاشکی روز شمایان سر آمدی. نایمان میخواهد او را بکشد، اما قایدو و ارلات نمیگذارند و ارلات به آنان میگوید که بیش از این درنگ نکنند و بروند. سرداران میروند و زن آرام مینشیند. زن میگوید ما پنج خواهر ابدی، گریان که نالانه نالان کیم. جامعی تو را می دوزم تو ای در خیال فرزندم تا اینکه توی خان و شش سردار دیگرش را می و به آنان می گوید سلام بر شما یاوران عجل توی خان به دیدنش حیرت می کند خاراخان می گوید در نمایش او بنگرید چهار نشان زندگی مرده و فقط مرگ مانده سرزنده زن می گوید خواهر برادری بودم دختر پدری آسمانشان برد و زمینشان بلعید خانه خرابی شوی مردهی ناامید از فرزند من نگهبان چشمه‌ای بودم که شما خوشکاندید. اورخان از او میپرسد: چه چیز می دوزی و زن پاسخ می دهد قبای زمان بر تن خود می فرمن سیاه کی را جامعه عظامی بافم گورخان با شنیدن سخن مرگ میخواهد زن را بکشد واتوات نمیگذارد تویخان نیز میگوید زود بروند و به سور برسند و استخان پاره به سوی زن بیفکنند تا نحسی او نگیردشان اینک توغای خان و هفت سردارش میرسند و به دیدن زن در میمانند. زن نیز با دیدن آنها میگوید: سلام بر فاتحان ترساور درود بر درفشاوران ویرانی توقای و یارانش با حراس به او دستور میدهند که بگوید کیست و زن پاسخ می من آینه شمایم آینه ای شکسته که همچنان برخاکم و بر من قبار نشسته. دستی باید قبار برو و جلا دهد تا به تابم به تابشی و به سوزانمتان و شما همه را از خود پاک کنم. بایاروت به او میگوید تو زشتی زن و زن میگوید گوید زشتی خود را بینگرید. تقای خان دستور می دهد که او را بزنند که زدجه زن بلند می شود و در میان زدجه زن دینکیز و اینان و یلدوز به تقای میگویند گویند که دست بردار. او را کشتند، روز پیش و روز پیشتر هم، چون بنگری در او تیرها نشسته. زن فریاد میزند، در من مرگ خیش را بنگرید. با وحشت و درد شما فاتحان همگی میمیرید. اینانج و تقای به زده از این اتفاق بران میشوند که زود دور شوند و به کلات برزن در همه کلات بوی کباب این زیافت است. هر طرف پاره ای از اسب و گور و گوساله. دراج و قزال، تیهو و گاومیش و بره. در کلات چشمی نیست که به این زیافت نیست. خان گسترده و مهمانان در سفره خانه نشستند. بی میزبان. توی خان پنهانی به یکی از سردارانش میگوید که نامهی بنویسد به سلطان، و به او بگوید تو خان قصد فتح کلات را داشته است و بنویسد من این کلات را به نام سلطان نگهبانم همچنان بنویسد نخست خائنان را کتبسته خواستیم توقانیان را میگوید اما چون تیغ برآوردند لاجرم کشته شدند و سلام ارلات باز به او میگوید که مهمان نکشد که او را لقب مهمان کش کند و از او می پیکی به نزد آیبانو بفرستد و نخست با او کنکاش کند تویخان به ارلات می گوید می چه در سر داری مرا دشمن کش لقب است و اینک دشمن بر سر سفره است آیبانو یک زن است او را چه در کار مردان داوری کند شما خردمندش میدانید و راستی هست اما آنچه شما را فریفته زیبایی اوست نه خردش سپس تویخان که اینک خود را فاتح میداند میگوید توقای تو حالا آن نعشی هستی که بر سر آن با من جنگیدی و چشمانش را میبندد و وارد مجلس میشود که توقای فریاد میزند نه nah. و تویخان خود را در میان شمشیرهای سرداران توغای خان می‌بیند حالا توقای است که دست برتر را دارد او به توی خان می‌گوید آن نش تویی توی خان می‌دانستم پشت مهربانیت دامی است. حالا تو وسط این دامی که خودت پهن کرده ای و با نشان دادن نامه‌ای به توی خان ادامه می‌دهد در نامه‌ای که به سلطان می‌فرستم خواهم گفت تو تقیان کردی و آنچه ما کوشیدیم وظیفه چاکری بود توقای به سردارانش دستور می‌دهد که شمشیرهای سربازان تویخان را بگیرند و آنان را تسلیم کنند و تویخان را نیز به بند ببندند قایدو پریشان به مجلس می‌آید با این خبر که سفرهداران مردند و از آنچه که می‌بیند در میماند. توغای و سردارانش به او می‌گویند سپر بیاندازد اما قایدو به امر تویخان می گریزد. توقای دستور می دهد که او را بگیرند که در این هنگام قایبابات سراسیمه می رسد و میگوید که سرداران تویخان گریختند. توقای میگوید بر تبل وحشت بزنند تا پیش از آنکه که سرداران تویخان جامعه بگردانند و در میان مردم بگردند آنان را بگیرند. قایبابات و اینانج می روند. قراتخان و قنقرات با نیزه به شانه های تویخان فشار می و او به زانو می افتد. تویخان به توقای می گوید نه توقای. آنها کلات را از تو بهتر می دانند. این شهر زیر زمین ها و راه های تو در تو. این شهر حسار در حسار. این شش در. چهار سردار توقای نیز ناامید از گرفتن یاران تویخان برمیگردند. توقای فرمان می‌دهد که های کلات را ببندند و سردارانش اربدکشان هر یک به سوی می‌روند. توقای می‌گوید سفره بیاورند که گرسنه است و رو به تویخان می‌گوید اینک ساتور و تشت و پیشبند خواهند آورد اگر خداییداری به باری بخوان. بلکه مرگت را برایت آسان کند. تویخان پاسخ می‌دهد: مرگ آسان نخواستم. توغای خان دامه می‌دهد: تو خواستی افتخار را که چون جسدی پیشم افتاده بود از شنگم درآوری و پنداشتی این هم آیبانوست. توی تویخان با شنیدن نام آیبانو می خروشد و میگوید: از آیبانو چه گفتی؟ می میگوید: کسی از آیبانو نپرسید که همسر کدام ما خواهد بود سرنوشت او این بود که چون قنیمت جنگ سهم کسی باشد که بیشتر کشته است هیچیک از ما برتری نداشت تو او را بردی چون زودتر رسیدی تویخان میگوید من فاتح جنگ بودم توقای قای همه میدانند توقای ادامه میدهد تو آیبانو را نمیخواستی. اتحاد پدرش را میخواستی. که ملکش از آلان تا قرارود گسترده بود. تو کلات را میخواستی که قلب تپنده آن است و سرزمین آلانهای جنگجوست است. تویخان میگوید که خود آن جنگجویان را به آورده است. توقای میفزاید در شمارش آن روز ده سردار تو کشته های خود را به تو وام دادند تا از شمار کشته های من فزونی بیاوری تو با این هیله مرا برای همیشه از دیدار آیبانو محروم کردی. تویخان خان برمیاشوبد و میگوید که آیبانو را پدرش به او وصیت کرده بود. تویخان میگوید از آن روزی که نخستین بار چشمم به آیبانو افتاد، قلبم دو پاره شد. دیر بود. پدرش دست او را به تو داده بود. آیبانو نگاه نکرد که چه دیدگان مشتاقی از پشت کلاه خود بر او می‌نگرند. دیدگانی که در فراغش همیشه گریان میمانند. تویخان تقلا کنان به توقای می که این یاوه ها چیست که به هم می بافر. هنگامی بعد سرداران درمانده توغای یک به یک از راه می رسند. بابات، دینکیز و قنقرات از گریختن سرداران تویخان می گوید. تویخان از باز شدن روزنه امید شادمان است. هرچند خودش در حسر است. بایاروت میگوید که با شنیدن صدای حراسنگیز تبلها مردم حاکم جدید را شناختند. اما بیشتر از آن چشم در سرانجام پادشاه پیشینند. همه ناگهان بر این اندیشه میشوند که با تویخان چه باید کرد؟ تویخان میگوید که گردن به سرنوشت نهاده است و توقای لوح و قلم می که بدترین شکنجه را نصیب تویخان کند توقای بنویسنده میگوید که به آیبانو بنویسد توقای در کلات در انتظار اوست تویخان میخروشد اما توقای برای خود تویخان رأی دیگری در سر دارد او دستور میدهد که تویخان را ریش بزنند و چون زنان سفیداب مالند و بر او جامعه زنانه بپوشانند در شهر بگردانند چون فاحشگان و خود و زرعش را بر تن آدمکی بپوشانند توی خان به توقای التماس میکند و از او مرگ میخواهد اما توقای به او میگوید من با تو نمیجنگم توی خان من با افسانه ی تو میجنگم تنها بگذار تو را در لباس روسپیان ببینند توقای خان دستور می‌دهد که بر تابل بکوبند و تویخان را ببرند همه به بجز قنقرات و دینکیز هر دو آشفته‌اند و با ترس و حراس سخنی به توقای خان می‌گویند می‌گویند که توقای اشتباه کرده است می‌گویند همباره نام تویخان و توقای خان با هم برده میشد. و حالا با شکستن افسانه یکی دیگری نیست خواهد شکست. توقای ناگهان از سرانجام کار میترسد. اما راه برگشتی نیست چرا که هرگز از سخن خیش باز نگشته است. در شهر تویخان را بزک شده در رابه میگردانند. روسپیان و کودکان و آوازخانان به او میخندند و سرگین و سنگ میاندازند. از آن سو توغای به باده نشسته و مس پیروزی است او دستور می‌دهد تا پیکی روان کنند سوی آیبانو و خود چشم به راه خبر بود که بیاورند از خندق سر بریده طیخان اینک دوستاقبان و میر عجل می‌رسند کسانی که اهتدار بریدن سر طیخان بودند دوستاقبان آشفته است و به میر عجل می گوید که بهتر از فرار کنند. اما میر عجل میگوید که واقعیت را به تویخان خواهد گفت. واقعیت این است که مردم به او حمله بر شدند و او تا خواست خود را از جمعیت رها کنند، تویخان گریخته است. دوستاقبان به میر عجل میگوید که نیکبخت بودند که سربازان، همه چشم در خلایق بودند و پنداشتن که تا جمر را میراندهند سر از تن تویخان جدا شده و در خندق بلا افتاده و از میر عجل میخواهد که روایت سربازان را به تویخان بگوید اما میر عجل میپرسد که اگر سرخاست چه کنیم و دو پاسخ می‌دهد که بهانه می‌آورند خندق از خاک پر شده در این میان توقای قنقرات و دیگر سرداران توقای میرسند. قنقرات به میر عجل و ساقبان آفرین میگوید که کار خود را به درستی انجام دادند و از چگونگی انجام آن نمیپرسد. و آن دو با شنیدن این سخن متحیر شده و بعد از گرفتن پاداش خارج میشوند. توقای دستور میدهد که ماجرای تویخان به شش جهت فرستاده شود. جز یلاق که قایب بابات به آن خواهد رفت و اخبار خوش خواهد آورد در ییلاق در میان پرده نشینان فقط یکی و آن یکی آیبانوست. بانو آنکه خود را فدا کرد تا جنگ مغلوب صلح شد هفت قلم سیاه پوشیده هفت زن بر او گرفتند هفت پرده شبگون او نشسته پشت پرده ماتم ماده ببری نالان از درد غیرتش اشک می‌بارد به پهنای صورتش پردهدار آیبانو گرد سواری را از دور می‌بیند و چون سوار نزدیک‌تر می‌شود می‌بیند که ارلات است یکی از سرداران تویخان بشنوید ارلات چه خبری آورده است کاکل ببرید و گونه بخراشید آمد آنکه بلا آمد وقت ماتم است دستینه بشکنید آی بانو زبانم لال که بدخبر باشم آیا شنیدی که تیخان را گردن زده اند و نشسته ای ارلات میگوید و میگوید تا مویه زنان میرود تا عرش خبر پشت خبر در راه است سوار پشت سوار ده سوار همگی سپاه را سردار ارلات میگوید که او و سایر سرداران گریختند و شرمسار است از اینکه هیچ نکردند. پردهدار به آیبانو میگوید که سواران و پیکا یکا یک میرسند آیبانو نیز به پردهدار میگوید که همه را بار دهد. آیبانو از ارلات کمک میخواهد ارلات نیز با دلی پرهراس از آیبانو میپرسد چه در سر دارد؟ و آیبانو می گوید توی خان اگر شکست توقای را هم می توان شکست. ارلات به او میگوید که برای حمله دستشان توهی است و از او میپرسد تو کلات را می خواهی و آیبانو پاسخ می دهد که ویرانی کس که کلات ماده را میخواهم ارلات میپرسد این انتقام چیست و پاسخ میشنود این بخت من است، که یا بگیرمش یا مرا براندازد ارلات در این بین به آیبانو میگوید که همواره عاشقش بوده و به عشق دیدار او به توی خان خدمت میکرده است آیبانو به ارلات میگوید که اگر او را همراهی کند با او ازدواج خواهد کرد ارلات که به خود میبالد میگوید و اگر پیروز نشدیم در کنار تو جان خواهم داد با من به چیزی پیمان کن. ارلات در برابر عهدش پیشبند چرمینش را به آیبانو میدهد می و آیبانو نیز پیش دامن حریرش را به او. ارلات سوگن میخورد خورد که از این پیمان هیچ نگوید. با رفتن ارلات پردهدار خبر آمدن گرخان بیگ سردار تویخان را میآورد. گرخان سراسیمه وارد می شود و شگفت زده از آی بانو می پرسد که چرا هنوز برپاست و نمی گورخان گرخان با حالی نظار از تویخان می گوید که با آدمکی از کاهنی در شهر می گشته است و می گوید بر صورتش لبخندی کشیده بودند حال که او خود گریان بوده است. آیبانو به گرخان میگوید با رفتن به کلاد از این بدتر می میکند. گرخان او را بر می میدارد و میگوید به چه امیدی قدم در این راه بگذارد و آیبانو پاسخ میدهد به امید هم خوابگیم. میگوید پس قرار من این. آیبانو ادامه میدهد پس قرار من این تنها به شرط پیروزی. گرخان میپرسد اگر پیروز نشدیم و آیبانو پاسخ میدهد در کنارم میمیری. گرخان شادمان میشود و به نشانه پیمان زرهش را به آیبانو میدهد و آیبانو نیز یل خود را به او. گرخان سوگند میخورد که حدیث این معامله را کس نشنود. آیبانو در آخر به گرخان میگوید بیرون یک سو ارلات است فرمانده بر نفرات است برو به چادر و کنکاش آنجا منتظر باش و از پردهدار میخواهد که سولدوس را به اندرون راه دهد گرخان می و سلدوس می آید. آیبانو از سلدوس می پرسد که آیا همین گونه بود تویخان لباس روسپیان داشت و سربند زنان و سلدوس آشفته همه توصیفات آیبانو را تایید می کند. آیبانو به سلدوس میگوید گوید که باید به او راهی را که تویخان تی کرده است نشان بدهد. سلدوس حراسان به آیبانو میگوید گوید که راه برگشتی نیست و خود او تنها توانسته است که ساعت پوشهای تویخان را به سعیل ایلخانی از بازار بخرد. آیبانو به سلدوس میگوید گوید که آنها را به چهار ایلخانی به او بدهد و سلدوس سر باز میزند و میگوید که فروشنده نیست بلکه سردار است. آیبانو ادامه می دهد پس همین که می گویی باش که از سرداران بیش از موتم و زاری برمی سلدوس می گوید من هرگز تخخیر نشدم. می دانستم که آیبانو دوستار توی خان نیست. همواره میپرسیدم پرسیدم که دوستار کیست؟ آیبانو پاسخ می دهد من به آن کس آشقم که سر توغای را چون گوی چوگان به پایم اندازد. سولدوس نمیداند چه بگوید و آیبانو می گوید که به گفتن نیازی نیست و پاسخش را از لرزش دستانش دانسته. سولدوس می گوید اما نه. من زیر فرمان زنی بروم، آیبانو میگوید تو از خود به دنیا نیامدی سلدوس، تو بزرگ نشدی جز در کنار زنی. اگر مهری را که از تویخان دریخ کردم، از من میطلبی قدم به طلب بردار. من تو را وعده می دهم، سلدوس از او میخواهد دیگر نگوید، اما آیبانو ادامه می دهد. وعده میدهم آنچه عاشق از معشوق میطلبت سولدوس که هنوز باور نمی کند که چه شنیده است پیمان را میپذیرد سایت پوش را به آیبانو می دهد و آیبانو مچبندش را به سولدوس سولدوس پیمان میبندد که چیزی از گفته هایشان را نگوید و آیبانو به سولدوس فرمان می دهد که در چادر سرخ منتظر باشد و پیش خود میگوید من چیزی میدانم که شما نمی دانید. راه مخفی کلات که روزگاری حکومت پدرم بود پردهدار از آمدن قاراخان میگوید و قاراخان سراسیمه وارد میشود و به خاک میافتد او از آیبانو میخواهد که ببخشدش آیبانو به قاراخان میگوید گوید که مرد ایستاده میخواهد نافتاد و از او که کاتب تویخان بوده است میخواهد حقیقت ماجرا را بگوید قاراخان نیز میگوید که این نخست عزم تویخان بوده است که توغای را بکشد اما ناگهان توطعه بر تویخان رقم خورد آیبانو به قاراخان میگوید که آماده جنگ با توغای باشد قاراخان از این گفته در میماند آیبانو میآشوبد که تو مگر در آغاز طلب بخشش نمیکردی. کردی. میگوید می گوید که اگر آیبانو چنین گمان می کند او را گردن بزند. اگر نه بگذارد که او بگریزد. آیبانو در اینجا از قصیده هایی می گوید که قارخان در وصف آیبانو ساخته است. و قارخان با شنیدن این سخن حراسان به آیبانو می نگرد. آیبانو ادامه میدهد دهد که پیشتر ترانه هایی بینام به دست او می رسیده است و از قاراخان می پرسد تو آنها را نسروده ای؟ قاراخان شرمگین می گوید آری، راست بگویم همانقدر که غمگین خوشحالم آیبانو می گوید پس بگو هماسه بخوانند. مرگ توی خان نباید با ناله گفته شود آن روز که بالشم را با تو تقسیم کنم از وسوسه گناهت راضی خواهی بود البته نه قبل از مرگ توغای قاراخان سوگند میخورد که مرگ توقای را با خونش بنویسد قاراخان برای پیمان پای افزار تویخان را به آیبانو می‌دهد و آیبانو نیز پای تابه خیش را قاراخان سوگند میخورد که از این قرار چیزی نگوید و میرود. این بار پردهدار خبر آمدن اویرات را به آیبانو میدهد. اویرات به حضور آیبانو میرسد و از شادی دشمنان می گوید و ریشخند شدن تویخان آیبانو میگوید که آنان دل و توان مساف نداشتند. اویرات ادامه میدهد که اینگونه نبوده است. آنان آماده نبرد بودند اما نامهای به مهر تویخان می رسد که شمشیرها بنهند آیبانو میگوید یادش بخیر جنگ اویرات مصمم میگوید اویرات را مرده مگیر من آمدم در رکاب تو برگردم و دمار از ایشان برآورم آیبانو از او میپرسد که در برابر این کار چه میخواهد و اویرات پاسخ می دهد هیچ آیبانو باز همین پرسش را میپرسد و این بار از عشق پنهان خود به با آیبانو می گوید. آیبانو به ایرات کوهنسال و زشت صورت می گوید هر زخم تو نشان از مردانگی توست. ایرات زخم شمشیر روح تو را آسیب نرسنده. تو گمان می کنی زشتی صورتت ستمیست بر قلب من. مگر نمی دانی که زنان بر مردان ستم کار آشقند. شادمان می گردد و سوگند میخورد که برای آیبانو توغای را پوست بکند و از کاه بیا کند. و به نشان پیمانش سپر تویخان را به آیبانو می دهد. و آیبانو نیز آینه خود را به او آیبانو به اویرات میگوید گوید که به کنار دیگر سرداران برود اویرات می رود. پس از رفتن اویرات دیگر سرداران تویخان، قایدو، ارخان، واتوات و یامات یک ها یک میرسند و میروند. هر یک سرفکنده از شکست و با رازی در دل که همان مهر دیرین آیبانو است. آیبانو به هر یک مجده وسال میده. وسالی که در گروی فتح کلات است و آنان با شنیدن این پیمان سرخوش و سرمست است به لشگر می پی بندند. حال آی بانو تنها در اتاق خیش است و با خود چنین میگوید: آی عشق با مردمان چه میکنی؟ ما با همه آزادگی بنده توییم. توقای، ای مل اون، چرا آن روز که پدرم دست مرا به توی خوان داد قدم پیش نگذاشتی؟ چرا در محاصره کلاد یک روز دیر رسیدی؟ چرا در روز فتح به هیله دست نبردی تا توی خان با یکی دو نش از تو پیشی نگیرد؟ تو مرا هرگز ندیدی که از پشت نقاب زنان قلبم برای تو میزند. مل اون بادی تو قای. چرا مرا به دست توی خان دادی که بند بند وجودم از او تنفر داشت؟ چه میگویم؟ او حتی در خیال من هم نیست او در خیال فتح کلات است اینک تو قای. اگر شیری بر خود بلرز چون ده ببر شکست قفس تو را پاره میکنند اینک پیرزنان آلان میرسند هر چهار تن سیاه پوش و سپید موی و آیبانو از آنان میپرسد که چه کند حالان که شادیش غم است و قمش شادی است پیرزن نخواست نخست به او میگوید که همچون پدرش نگهبان کلات خواهد بود. آیبانو میگوید پدرم ده سال کلات را از مقل نگه داشت و سپس با تویخان صلح کرد و از او خواست که دیگر نکشد و قارت نکند که کلات از آن اوست و چون تویخان بر این پیمان شرطی خواست پدرم مرا به ازدواج او درآورد. سه پیرزن دیگر موی کنان به آیبانو میگویند که او با این کار کلات را نجات داده است پیرزنی از میان آنان ادامه میدهد کلاتیان سرنگونی فاتح را همیشه منتظر بودند چون سال نو که قولهای گلی را میسازند و می شکنند پیرزن دیگر می افساید اما در آن شادی نمیدانستند که از چاه درآمده و در چاه دیگر و آیبانو به آنان میگوید این چاهی است که یا من در آن میافتم یا فاتح نو پردهدار از آمدن پیک میگوید و آیبانو میخواهد که او وارد شود و پیرزنان میروند پیک وارد میشود آیبانو به پیک دستور می دهد که آلانی ها را برانگیزد تا با فولادهای داده شده بر دشمن بشورند پیک با شنیدن فرمان به سرعت خارج می شود پردهدار خبر آمدن سرداران را می دهد. سرداران پس از تحقیق ناامیدند. سولدوس از آنچه چه کردند گزارش می دهد. آیبانو اجازه نمی دهد که گزارش پایان یابد و می گوید که راهی نیست آن که میان منعو پیمانیست نیک می داند که کلات قلب آیبانوست تا نگشاییش گشوده نشود. با شنیدن این سخن ده سردار جا میخورند و هر یک میپندارد که آیبانو با اوست. ارلات میگوید که سپاهشان خرد است و هر یک گوش به فرمان کسی، ارخان با سواران به کلات رفته از سلدوس با نیزه‌وران، اویرات با کمانکشان و دیگران نیز با گروه خود. آیبانو برلات می گوید که، او فرماندهی همه را عهده گیرد. ارلات میپذیرد و سپس از نقشه خود میگوید. در گرگمیش شش سردار ما با سپاه بر در شش دروازه خیمه و خرگاه میزنند و تبل آشوب برمی و قوقا و ولوله در سقف فلک میفگند. آغاز ستیز، توغای سپاه خود را پخش میکند در شش ششتهت به پشت شش دروازه در کرنای نیم روز سپاه پنج سردار ما تبل هزیمت میکوبند و فریاد کشان و شوراور چنان نشان می دهند که گریز را درکارند اما این گریز نیست آی بانو پنج سردار هزیمت شده خود را تیز و سبک میرسانند به سردار ششم من ارلات و همه از یک در حمله می کنی. در آن حال که سپاه توغای بی خبر در شش جهت پخشند آیبانو از ارلات میپرسد که آیا نقشه کامل است ارلات می که جنگ را چهار سردار تازه نفس دیگر به پیش میبرند. در این حال آیبانو از آلانی ها ساکنان اصلی کلات می گوید که سالهاست منتظر شورشند و گام آخر پیروزی را آنها میتوانند بردارند سولدوس از کمبود آب میگوید و عرلات پاسخ میدهد که آب از چشمه ها برخواهند داشت و سپس میفساید که اما هنوز امید کم است آیبانو میگوید پس بر من است که امید را چندان کنم اولین که از درون کلات بسیاری به کمک ما میآیند از از دلبستگان پدرم وقتی که بدانن این سپاه آیبانو است. و اینکه در کلات هستند آنها که در فرمان تویخان بودند و اینک از گریختگانند هستند کسانی که شمشیر ندادند وکنون در شهر پنهانند و هستند آنها که ناچار با توغانیان خندیدند اما به وقت وقت از ایشان روی میگردانند سرداران از رأی آیبانو شادمان میشوند آیبانو اضافه می که همراه با خود کسی را به نام تویخان ببرند تا همه بنگرند که تنها یک جان از تویخان رفته و با شش جان دیگر برگشته است این چنین وحشت میکشدشان. در این میان هر یک از سرداران سخنی در تحسین آیبانو می گوید و سپس آیبانو از راه مخفی کلات می گوید. راهی که هیچ کس از آن خبر ندارد جز او راهی که مستقیم به دیوان خانه می رود. خبر می دهد که پیک تو قای, قای بابات رسیده است. آیبانو به سرداران می گوید که پشت کنند و روی خود را بپوشانند تا قای بابات آنان را نبیند. قای بابات وارد می شود. با دیدن آی بانو در جامعه رزم شگفت زده می شود. او به آیبانو میگوید گوید که تویخان در کلات در انتظار اوست. آیبانو به او میگوید گوید تویخان کجا منتظرم است؟ در آن دنیا؟ قایبابات پریشان آماده می شود که بیرون برود و از آیبانو کلام آخر را میخواهد خواهد که با خود به کلات ببرد. آیبانو میگوید گوید پیام است توانیان را امان ندهید. با هر یک روبرو شدید. سرش هستن بیاندازید. بعد از گفتن این با یک ضربه بابات را میکشد اینک در ییلاق اقامتگاه آیبانو آفتاب پایین آمده است هر گوشه چادری برپاست همه از جمله آلانیها خود را برای نبرد تجهیز میکنند و دوباره نقشه جنگ را مرور می کنند. بیان که تا سپید دم خواب به چشمانشان بیاید در کلات توغای خان نعر زنان از خواب می پرد و مشعلی می طلبد. قنقرات نگهبان او به پیشش می آید و از او می خواهد که آرام باشد. چون همه چیز در امن و امان است و او در قلعهی که فتح کرده است خوابیده. توغای می گوید دیوارها مرا می خورند. من هرگز شبی نخفته بودم میان چهار دیوار. این دیوارها چه ستبرند و چه بلند؟ دم بدم گویی به من نزدیک می شوند. من همیشه آسمان می دیدم، ستاره و ماه و اکنون سنگینی تاق هاست بر سرم، مانند سنگ گور و سپس از سرانجام پیک و بابات می پرسد و قنقرات پاسخ می دهد که خبری از او نرسیده است. اینک، توغای خان هراسان و پریشان از خوابش میگوید خواب دیدم که ده ببر شکست قفس به سوی من میآیند و چون انگشتان دو دست با همند در آن چه سری است قنقراد پاسخ میدهد در خواب سری نیست سری اگر هست در بیداری است توغای خان میگوید اما قایبابات قنقرات پاسخ می‌دهد که بیگمان به دلیل مهمان نوازی آیبانو شبی را در اقامتگاه او مانده است توقای می‌گوید از آنجا که آیبانو فردا میرسد به پیرزنان بگویند که شبستان بیاورند در شهر هلهله کنند و سپس به قنقرات می‌گوید که دیگر سرداران را خبر کند که از آنان درباره‌ی معنای خواب بپرسد سرداران وارد می شوند هر یک به خاطر خوابی که دیدند پریشانند توغای به آنها از خوابش می گوید و از ده ببری که با چشمان دریده به سویش حمله ور بودند دینکیز به توغای می گوید که شاید آن ده ببر ده سردار تویخان باشند که در راه های پرپیچ و خم کلاد از دست آنها گریختند توغای می گوید ده ببر شکسته قفص اینجا در کلات کاش همانجا که مخفیان دفن شوند این ده سردار. مبادا که صداشان به گوش آیبانو برسد. قنقرات به توقای اطمینان می که آنها نمی توانستن برای آیبانو بفرستند. توقای می گوید اگر تا کرنای سهر قایبابات نرسید جامعه رزم بپوشند یا به پیشواز آیبانو خواهند رفت. یا او را به اسیری به کلات خواهند آورد. صدای کرنای سحر شنیده می شود و همراه با آن صدای تبل و کرنای دیگری به گوش می رسد. توقای می گوید که این صدای چیست؟ و قنقرات پی پاسخ می رود و حراسان بر می گردد و می گوید که این صدا نه از کلات که از سپاهی است که به سرداری ششتن از سرداران تویخواان شش طرف کلات را گرفتند. پیکانیز نیز یک و خبر میآورند که این سپاه ازان آن است و میگویند که قای بابات نیست کشته شده است و سرش بر فراز نیزه است. توغای می گوید گفت شش و ده دیینکیز میگوید میدانیم که شش سردار خود را به در بردن. آنچه بد است، این است که از چهار نفر دیگر نمی دانیم. کیست که بگوید گریختند یا پنهانند یا دشمن را در نهانگاهی گوش به فرمانند؟ توقای دستور می دهد که نگهبانان چهار برابر شوند و دیگران را نیز بخوانند تا در مجلس کنکاش کنند و شمشیر خود را می جوید. همه می روند و توغای تنها می ماند و می گوید خوب آمدی ای بانو. کاش مرا اسیر می‌افتادی تا بنگری چه سان من اسیر توام آنگاه که خورشید در مزرع آسمان به گردش افتاد سرداران یکا یک می رسند و میگویند که دستورهای توقایخان خان انجام شده است با می گوید در تمام گیلاغ این سپاه نیست گویی هر جانوری از سوراخ آمده و در سپاه آیبانو، پرچم فتح گرفته است. توقای با خود می گوید تو مرا تنها دشمنی که مرگت را نمیخواهم. سرداری نداری که بیشتر از من یاریت کند. سردارانم را به ضد تو برمیانگیزم و خود با تو نقشه ما چه باشد تا تو را گزندی نرسد؟ سپس رو به سرداران می کند و میگوید گوید که نقشه آنها چیست؟ به بیرون کلات بروند یا در کلات بمانند؟ سرداران به توغای میگویند که حال که آیبانو به خانه خود میاید، است که توغای بتواند مدت زیادی در کلات بماند. توغای با شنیدن این سخن میخروشد و دستور میدهد که اما نامه ها را لغو کنند و اجازه ندهند که کسی در ها گذر کند. قنقرات با شنیدن این فرمان میرفت. دینگیز به توغای میگوید که بهتر است از کلات بیرون بروند چرا که هر آن ممکن است کلاتیان به آنها از پشت خنجر بزنند توغای به او میگوید که مگر نشنیدی که نام مرا در گذرگاه ها میگفتند و دینگیز پاسخ می دهد این سکه است که این روزها همه خرج می کنند تا اعتماد ما را بخرند فقط صداست پشت آن زبانی هست. قلبی نیست توقای میگوید، ولی بانگ کلاتیان گوش فلک را میآزرد که می پیروز بخت بادی توقای بهادر و دینکیز پاسخ می این صدای مصلحت است که می شنیدی توقای. زندگی شغلیست. برای زنده ماندن فاحشه باید. قنقرات میرسد و میگوید گوید که در میان سپاهیان آیبانوست که با تنپوشی از آینه آمده است. توقای ناباورانه می رود تا خود او را ببیند. که پیکی از راه می رسد و می‌گوید در میان سپاهیان تیخان نیز هست همراه با او پنج پیک دیگر نیز از پنج دروازه دیگر یکا یک می رسند و خبر می‌دهند که تویخان را دیدند توقای خشمگین است و سردارانش واماندن دینکیز می‌گوید شش تیخان پشت شش دروازه توقای می گوید اگر شست هم باشی پیش تیغم کمی توی خان. یک بار مرگ تو را کم. بیا تا مرک های بسیار بنگری. و سپس به سرداران دستور می تا بگویند سربازان به سوی سپاه آیبانون حمله بر شوند. همه به شتاب می روند. قارات و بایاروت می رسند. توقای از آنها درباره وضعیت شهر میپرسد قارات میگوید که گذرگاه ها خالی است اما سربازان میترسند که نکند مردم به ناگه شورش بیاورند و به صف مهاجمان بپیوندند توقای نیز میخروشد و میگوید اگر از این جنگ جان سالم به در ببرد دمار از کلاتیان برخواهد آورد و سپس می ولی توی خان به مرگ عجل مرده من به این سوگند می خورم ندیدید که آیبانو عزادار است بایاروت میگوید آیبانو را دیدم تمام پوشیده، نه چنان چون زنان شی بزن. سپس ادامه میدهد در آنچه میگویم بیاندیش توقای. این جنگی است که اگر در آن پیروز شوی برزنی شده ای و و اگر شکستت بیاورن شرم بر من باید تنجه زنان بپوشی. توقای میگوید گوید که این چه حرفی است، ما با ارواح می جنگیم، مردگان و زندگان با هم، که صدای کرنایی شنیده می شود قراتخان و بایاروت خارج می شود توغای آشفته است و با خود می گوید از جنگ با کم نیست برای شش سردار است که دومیشان نیست آنان را هماوردی نباشد در جنگ آراستن و ضربه های بی جواب زدن و حمله های به کردن اما آنان چون خود من جنگاوران صحرایند، و این لعنتی شهر است جایی که حریف را نمی بینی و نمیدانی که تیر از کدام سو آمده مرگ از کدام در می رسد؟ های توقای تو کلات را فتح کرده ای یا مغلوب آن شده ای؟ شش پیک یکایک به همراه مجده ای از فتح سپاه توقای و گریز سپاهیان آیبانو می رسند و با گفتن خبر خود می روند. توغای، توقای شادمان می شود و دستور میدهد که بر تبل زفر بکوبند و بایاروت و دینکیز که اینک به پیشگاه توغای رسیدند از فرار سپاهیان آیبانو خوشحالند اما توغای در دل هنوز نگران چهار سردار دیگر تویخان است که در گوشه‌ای نهانند ناگاه پیکی سراسیمه از راه میرسد و می گوید که گریز فریبی بیش نبوده و لشکر آیبانو اینک به هم پیوستند و همگی به دروازه جنوبی حمله بردند. دینکیز حراسان میگوید گوید دروازه جنوبی تاب نمی آورد. توقای خبر را باور نمی کند. گریبان پیک را می گیرد و فریاد زنان به او میگوید گوید که حرف خود را عوض کند. اما پیک باز همان حرف را میزند. زند. توقای پیک را رها می کند و دستور می دهد که سپاهیان پراکندهش، برای دفاع از دروازه جنوبی آماده شوند. دینکیز به توقای میگوید که سپاه او جمع شدنی نیست، چرا که جنگ در صحرا نیست و در شهر است. اما بایاروت میگوید که دیگر چاره ای نیست. بایاروت و دینکیز توقای را بترود میگویند تا هر طور شده سپاه را جمع کنند. توقای دستور میدهد که جامدار و پردهدار بیایند و جامعه رزم بر او به پوشانند که قارات میرسد و میگوید که دروازه جنوبی به استقبال از مهاجمان گشوده شده است توقای در هم میشکند و گوشهای خود را میگیرد و از قارات میخواهد که دیگر نگوید قنقرات نیز با خبر ناگوار دیگری میرسد او میگوید که تویخانیان و کلاتیان در کنار هم پشت حصار اولند توقای بر میان شوبد و پیمان می‌بندد که آنها را در هم می‌شکند سپس یلدوز می‌رسد و خبر می‌دهد که حصار اول فرو ریخت و می‌افسایَد که گروهی از سپاهیانش گریخته‌اند سرداری دیگر نیز می‌رسد و از شکست سپاه در حصار دوم می‌گوید توقای از خشم فریاد می‌کشد و دستور می‌دهد که به دروازه سوم بروند و شش توی خان را به سرداران شمشیرکشان خارج می شوند و جامدار و پردهدار با لباس ها می رسند در زمانی که توقای جامعه رزمش را می پوشد جامدار و پردهدار ترسان از شایات میگویند. از پیوستن کلاتیان به مهاجمان و زنده شدن توی خان توقای بر می آشوبد و به آنها دستور می دهد که بیرون بروند و دوستاقبان و میره وارد می شوند. توقای از آنها از چگونگی مرگ تویخان می و آنها آسان از خشم توقای داستان می بافند و در آخر می گویند که او را بیان که کسی ببیند در زیر تلی از خاک در خندق دفن کردند. توقای می گوید که اگر چنین است کسی پیش او بماند و دیگری پی آوردن سر برود. میره عجل و دوستاقبان، هر کدام میگویند که میخواهد برود و دیگری بماند توقای چون این جواب را میشنود از آنها میپرسد چه فرقی است که کدام برود و کدام بماند و آنها یک صدا پاسخ می دهند هیچ توقای میگوید چرا فرقی هست آن که میرود میداند که سری در کار نیست آن که میرود آن دیگری را به مرک می فروشد تا خود زندگی بخرد سپس با آنها میگوید که اگر راست بگویند زنده خواهند ماند و میپرسد آیا تویخان را کشتند و آنها پاسخ میدهند که تویخان گریخت میره عجل از او میخواهد به این گناه گردنش را بزند و توقای پاسخ میدهد چرا؟ دیگر چه فایده؟ تویخان زنده است چه فایده تو را بکشم یا نکشم؟ و دستور میدهد که آنها بگریزند میره عجل و دستاغبان می توقای با خود می گوید که اینک او تنها باید به مسافه تویخان شست جان برود. حال به جای آنکه جامدار و پردهدار با دیگر پوشیدنی ها بیایند یاماتو واتوات از سرداران تویخان می توقای همچنان با خود دستوراتش و اندیشه های جنگیش را بازگو می یاماتو یامات ساعت پوش و ساعت بندش را به هم می بندن. ناگهان یامات به توغای می گوید که زانو بزند. توقای می گوید که تو کیستی پسرک؟ و می دست به شمشیر ببرد که می بیند شمشیری ندارد. و نمی تواند به درستی حرکت کند. و می فهمد که دیگر اسیر شده. سرداران آیبانو یکایک می‌رسند و توقای با دیدن ده سردار در می‌ماند و از میان آنها آیبانو وارد می‌شود آیبانو که حالا توقای را به تسلیم درآورده از او میپرسد چگونه ای توقای توقای نخست میپندارد که شاید او تویخان باشد هرچند که با شنیدن صدای زنانش اش شک می کند اما تقلا کنان به او می گوید جنگیان من شش تویخان را کشتند چگونه جان به در تویخان و اگر تو در بردی من چرا نبرم آیبانو پاسخ میدهد: تو خود را گفتی سلطانم ولی چه جز کارگر مرگی تو مرگ را تعمه میدادی هر چند زنی که تو را زاد پرستار زندگانی بود سرداران تویخان اویرات و واتوات به توقای میگویند که چطور میخواسته است فرار کند و توقای میگوید که میخواست جامعه رزم بپوشد که به جنگ برود اما آیبانو میگوید پس چرا نمیجنگی؟ جنگی توقای در زمانی که توغای تقلا می کند، آیبانو دستور می دهد که در شهر بخوانند، توغانیان شمشیر در زمین بنهند تا از مرگ برهند. سرداران توغای را به سخره می گیرند و توغای طلب مرگ می کند. آیبانو می گوید مرگ برای تو کم است و با این همه زود است مرگ تو. آیا غمگین نمی شوی یکی از نعش باشی که وقت فتح می بگو توقای، تو بر سر نعش فتنها کردی که از آن کلاد در خون نشست. تو خود چه هستی جز نعش؟ توقای به آنان می گوید که ما جنگاورانی بزرگیم و باید با همچون جنگاوران رفتار کنیم و آیبانو پاسخ می دهد که اینجا با جنگ بزرگ چه کردند و دستور می‌دهد که ریشش بتراشند و چون روز بیان وزکش کنند سرداران دیگر نیز استهزا کنان موافقت می کنند توغای التماسشان را می و می گوید از اینکه که پیشتر چنین کرده است پشیمان است و زمانی که سرداران تویخان شکنجه ها را برمیشمرند توقای توغای فریاد کشان می گوید تو از آنچه چه بر سرت آوردم خشمگین نیستی توی خان. دلیل خشم تو بر من دیگر است. تو از این درازاری که گفتمت آشقم بر آیبانو، تو او را روبودی به نیرنگ و بخت هرگز بیش از این از من بر نگشته بود. آیبانو با شنیدن این سخن میگوید آه چه می آنچه آن چه در انتظارش بودم و نشنیدم. حالا که منتظر نیستم می شنبم. آه تو قای، لعنت به تو. این چه گفتن است؟ پرپرم کردی در میان دشنام های سرداران توقای ادامه می دهد می این کنکاش به کجا می آیبانو را در سپاه دیدند مباد که مرا در زیر پای خیش به پستی یک موش بنگرد هر کاری بکن با من جز این که پیش او که قلبم زیر پای اوست قلبم را بشکنی دل آیبانو به شنیدن سخنان توغای میلرزد ولی با خود می گوید تو باید سخت دل شوی آی بانو اگر از دست می روی. آری تو را میکشم توقای و تابوت تو را هجله می کنم و سپس رو به سرداران دستور می‌دهد که توقای را به دیوان خانه ببرند و بر تبل پیروزی بکوبند سرداران به موافقت می‌گویند که باید گوش و چشمش بریده و نعشش بزک شود توقای می گوید بدتر از اینها ها که میگویی چیست؟ بدتر از این آیبانو میگوید که بدتر از این هم هست و او توقای را میبخشد توقای میگوید این بدترین است که با من میشود که دشمنم مرا ببخشد؟ نه نه با من کاری بکن جز این در تاتار چگونه باور میکنند که توقای برای زندگی لابه نکرده است؟ آیبانو دستور می‌دهد که توقای را زنجیر کنند. توقای تقلا می کند و میجهد و خنجر یکی از سرداران را بر سرداران شمشیر می کشند. توقای می گوید حالا من خنجری دارم و تو بی آیبانو می گوید خوب است. حالا می توانی به کارش بری و نقاب از چهره بر می توقای می گوید خدای من آیبانو است و خنجر را به سینه خود میزند. بلند می شود و به سوی آیبانو گامی بر دارد. یکی از سرداران زربهی به او میزند و توقای پیش پای آیبانو بر زمین میافتد. آیبانو پشت می کند و اویرات بر سر توقای می و میگوید، سرت سلامت آیبانو، دشمنت به دوزخ رفت. در این هنگام، آیبانو می گوید، آری، اینک کلات از آن ماست. یامات نفس نفس زنان میرسد و در پی او پیشمرگانی آلانی وارد میشوند. یامات به آیبانو می گوید که در جنگ شش سردار تویخان و شش سردار توقای کشته شدند. آیبانو میگوید که نامشان را آوازه کنند و اسبانشان را در این عزا کاکل ببرند و زین وارونه بگذارند و به جسد توغای اشاره میکنند و ادامه میدهد که جسد توغای را با حرمت تمام به پیشخان دیوانخانه ببرند تا سپاهیانش بر او بگذرند و شمشیر بیافکنند ها نیز جسد را برمیدارند و میروند. واتوات وات سراسیمه می‌رسد و می‌گوید که ادده ای از توغانیان سپر انداخته‌اند اما برخی دیگر از وحشت مرگ به جان مردم افتادند آیبانو به اویرات می می‌گوید که آنان را به سزای خیش برساند اویرات با چند آلانی خارج می‌شود آیبانو به واتوات وات نیز می‌گوید که شهر را به آلانی‌ها بسپارد و خود سر نگهبان گردد واتوات می رود آیبانو رو به صدوس می کند و میگوید که در پس دوستاقبان و میره عجل بگردد و بفهمد که تویخان چگونه کشته شد او نیز می رود آیبانو به یامات می گوید که او تنها کسی است که میتواند رازش را پیش او آشکار کند و به او می گوید راز پنهانی کلات نباید گفته شود پدر می میگفت راز نباید به بیگانه برسد اگر راه نهانی کلات شهر شود کدام شب از شبیه خون شبکشان آسوده میخوابی یا مات میگوید که باید به آن بیاندیش در این هنگام صدایی شنیده می شود پردهدار سراسیمه وارد می شود و میگوید که بسیاری آیبانو را ندیدند و آمدنش را به کلات باور نمی کنند و میخواهند به درون بیایند و او را ببینند یامات میگوید که این نیرنگی است ولی آیبانو میگوید که بگذار هرچه باید بشود پردهدار به کسی اذن ورود میدهد مردی میآید در لباس تیره و بلند و یامات به دیدن او خیره میماند و میگوید که اینک به راستی مرده از گور میشناسمش تویخان شش تویخان که ساختی کشته شدند آیبانو آنان خون خود را به هفتمین دادند او زنده است دیگر مرا امیدی نیست حاضران حیرت زدهاند آیبانو در برابر تویخان می ایستد و میگوید تویخان تویخان به یامات میگوید که برود یامات مردد میماند از زمانی که آیبانو به او میگوید که برود تا قوقای توغانیان را بنشاند او خارج می شود تویخان میگوید فرمان تو را می‌شنوند آیبانو میگوید سلام تویخان ما کلاتیان به دیدن هم سلام می کنیم. ناگهان سلدوس وارد میشود و دو و و عجل را چنان به درون میاندازد که بر زمین می‌افتند و سلدوس رو به آیبانو میگوید که اینان میگویند تویخان هنوز زنده است آیبانو که همچنان چشم در چشم تویخان دارد میپرسد، راستی و دستاغبان و میره اجل گریان تعیید میکنند. که ناگهان همگی میفهمند مردی که در میان جمع ایستاده است تویخان است. دستاغبان و میره عجل ناامید بر زاری خیش میفزایند. تویخان فرمان میدهد که آنان را بکشند اما آیوانو دستور میدهد که آنان را آزاد کنند. تویخان، ناباورانه میپرسد روی حرف من حرف زدی آیبانو میگوید اینجا کلات از توی خان خون بس است دوستاغوان و میر میرعجل تعظیم کنان بیرون میروند توی خان به سلدوس و واتوات وات دستور میدهد که بیرون بمانند اما آن دو با تردید به آیبانو نگاه میکنند آیبانو خطاب به آنها میگوید بله بیرون بروید و بگویید این فرمان را جار بزنند بر سر دیوارها. سپاه تویخان و توقایخان یکی شود. آنها که ماندند اینک مدافع کلاتند. به هر دو جیره بدهند. به یک اندازه. هر که شمشیر بخواهد نهاد، در عوض تکه زمینی دارد تا که بکارد و هرکس بخواست رفت، تاوان جنگ جامعه و شمشیرش اسپی دارد که بتازد. وات, وات و سلدست به شنیدن فرمان می آیبانو به تویخان میگوید می گوید از آخرین باری که تو را دیدم فریادت بلندتر شده. تویخان میگوید می گوید چرا نزنم فریاد؟ لباس من تن توست. آیبانو میپرسد: مگر نه اینکه تو نیز جامعه مرا پوشیدی؟ تویخان پاسخ می دهد به ناچار و آیبانو می من نیست. تویخان میگوید که من از تنپوش زنان نفرت داشتم و آیبانو میگوید نفرت من از تنپوش تو بیشتر بود تویخان از او میپرسد که چرا نگذاشته است که خود انتقام خودش را بگیرد آیبانو پاسخ میدهد که تو چون مهمانکشی شایسته توهین بودی من انتقام توهین به خود را گرفتم و زمانی که تویخان میپرسد چه توهینی آیبانو پاسخ میدهد. اینکه پستی یک مرد زن شدن است اینکه نااهلی از خیرت دوری نمک به حرامی را زنانه بپوشانند آنان به تو اهانتی نکردند به من کردند تو زن نیستی توی خان تو به دنیا چیزی نمیدهی بلکه میستانی توی خان میگوید که من از خندق بلا جستم تا این سخنان را بشنوم چه نفرین ها بر لب آوردم و بر زبان نیاوردم نفرتم باشتم تا از آن سلاحی کنم برای انتقام. شرم بر من که گفته شود انتقام مرا زنی ستانده. آیبانو میگوید: آه درد تو این است. میدانم. تو را بزک شده چون روسپیان گرداندند و به درد نیامدی. به درد آمدی از اینکه من زنم. کجا بودی وقتی ما همه با کمترین سپاه در برابر دیوارهایشان جنگیدیم و من در آن حال که اشک امانم را بریده بود بر خانه امکلات نفت و فلاخن میافکندم. توی خان به آیبانو میگوید که شادی دریدن جگر توقای را از او گرفته است. آیبانو به او میگوید تو لاف زنی توی خان. از تو چه کار برمی آنگاه که سردارانت به پناه من آمدند. توی خان میگوید چگونه سرداران من فرمان از زنی پذیرفتند؟ آیبانو میگوید تو مرده بودی و من زنی آزاد بودم. جز اسیری؟ چه پیش رویم بود؟ من تنها سرمایه ای را به کار بردم که داشتم. وجود خودم و حالا کلات و مردمانش را دارم که به سلامتی آیبانو سرود میخوانند. خانند. تویخان میگوید نه، فتح کامل از آن من است. من گرداگرد این دیوارها از مرد و زن سرها بیاویزم. از آلانها که به من خندیدن. در کلات، فرزندی نمی ماند آیبانو میگوید در جهان نه توغای میماند و نه تویخان اما کلات است که همیشه میماند تویخان ناگهان با خشم میگوید برو به شبستان و جامعه دیگر کن که زنان به خوابگاه زنان اولی سخن در سخنم میاویز از من اطاعت کن که زن در حد مرد نیست و سپس با گفتن این سخن میرود آیبانو با خود میگوید که پس جز خون ریختن راهی نیست و سرداران را میخواند که سلدوس و واتوات وات وارد میشوند. آیبانو به آنها میگوید که برای به آوردن پیمانش سدی سد هست و آن نیز تویخان است. سلدوس و واتوات وات خشمگین شمشیر میکشند و میگویند که مرد را یک اشاره بس است و میروند. آیبانو میگوید که رخت اعایش را بیاورند و زمانی که پیرزن از او میپرسد که چرا در زمان پیروزی رخت اعضا می میگوید تو چه میدانی؟ همیشه خبری در راه است. در این هنگام دو پیشمرگ آلانی می رسند و میگویند که پیروزی کامل شده است و همراه با این خبر میگویند که یامات و اویرات نیز در جنگ کشته شدند. آنها، از زنده بودن تویخان نگران هستند و به آیبانو میگویند که اینک دستور چیست آیبانو میگوید که در سوگ اویرات و یامات کرنای قم بنوازند و آنان را در گل بپوشانند سلدوس و واتوات را نیز به جرم کشتن تویخان تیرباران کنند. آلانها به سرعت خارج میشوند. آیبانو با خود میگوید خب تویخان این راهی بود که نشانم دادی. آیا توانستم که در حد تو باشم؟ و بعد فریاد میزند تویخان به جهانی که از آن آمده بود بازگشت و سپس زدج زنان میگوید مرا جامعه سوک بپوشانید. در حالی که پیر زنان جامعه ازارا بر آیبانو میپوشانند پیشمرگان آلانی میرسند و میگویند که دستورها انجام شده است پردهدار خبر آمدن پیک سلطان ایلچی را می دهند. ایلچی با همراهش وارد می‌شود و میگوید اخبار گوناگونی از کلات به سلطان رسیده است و ما نام فاتح را نمی‌دانیم و از حاضران می‌خواهد که او را به پیش آیبانو ببرند. پیشمرگان به او میگویند که فاتح آیبانو است. ایلچی نخواست باور نمی‌کند. اما سپس به همراهش میگوید که منشور حکومتداری را به نام آیبانو بنویسد و بعد از آیبانو میپرسد که آیا خطبه ای هست که به تاتار برسانم آیبانو میگوید آری این کلمات را همه جا پراکنده کن زنان فرزندان خود را با نفرت از جنگ به دنیا بیاورند دنیا به دست قهرمانان خراب شده با ماست که بسازیمش با شنیدن این سخن همه در برابر او تعظیم می چیزی که شنیدید قسمت 18 پادکست علف نمایشنامی فتحنامی کلات بود این نمایشنامه تصویری از تقابل دو سردار مقل بر سر افتخار و آیبانوه یکی از اونها یعنی تویخان حاکم کلاته که آلانها در اون ساکنند و پادشاه قبلی آلانها برای صلح دخترش آیبانو رو به همسری تویخان در آورده. قافل از اینکه سرداران تویخان و سردار ارشد توغانیان یعنی توقایخواان دلباخته آیبانو هستند. قسمتی که ما با شخصیت آیبانو برای اولین بار روبرو میشیم به علاقه سرداران تویخان یکی به یکی به آیبانو اشاره میشه. این قسمت از نمایشنامه بار خیلی زیادی از شخصیت پردازی این سرداران و همچنین خود آیبانو رو به دوش میکشه. به نظر من در این نمایشنامه بیشتر از جدال سرداران مقل با هم یا مذمت قارت ایران شهر توسط این قوم درباره فرهنگ مرد سالانه اون زمانه و حاکمانش صحبت شده به وفور ما شاهد دیالوگهای های مرد سالانه تویخان هستیم و به صورت غیر مستقیم متوجه میشیم توقای هم از این قاعده مستثنا نیست حتی سرداران تویقان و سرداران توغای خان هم همینطور جایی در نمایشنامه است که آیبانون در حیبت تیخواان با صدای زنانش بالای سر توقای حاضر میشه و توقای از اینکه به دست زنی کشته بشه شکایت میکنه. راوی نمایشنامه که اسم قصه خانه در یک چهارم اولیه بیشتر از ادامه نمایشنامه ظاهر میشه و به نظر میرسه بیزایی برای پیشبرد و روایت بهتر قصه این شخصیت رو به نمایشنامه اضافه کرده. چون نمایشنامه با اینکه نسبتاً طولانیه و نسخه چاپی 170 صفحه است، اما پرده به پرده نیست و ظاهراً نیاز به عنصر فاصله اندازی مثل قصه خان در روایت حس می شده. شخصیت زن پنجسر که یادآور زنان جادوگر در نمایشنامه ای مکبسه حضور کوتاهش، اما حضوری یاد ماندنی داره که با تک بسیار هنربندانش به نظر میرسه دیدگاه نویسنده رو قبل از ورود آیبانو در نمایشنامه نشون میده قطعا شخصیت های نمایشنامه نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارن که خب از موضوع این پادکست خارجه امو فتحنامه کلاد مثل نمایشنامه مدعا از جمله آثار ادبی نمایشی که تصویر مستقل و درستی از زن ترسیم میکنه و تو دام شعار و سطینگیری نمیفته آیبانو اونقدر در روند این قصه موثره که نمایشنامه‌ای که میره بعد از مهمانی تویخان تبدیل به تراژدی و تبدیل به اثری حماسی میکنه و دیالوگ پایانی نمایش نامه، یعنی زنان فرزندان خود را با نفرت از جنگ به دنیا بیاورند پازل حماسه بیزایی رو کامل میکنه مفهوم شاخص ای که در دیالوگ های زن پنج سر و آیبانو دیده میشه نگاه ضد جنگ هاست. هر دو معتقدند سرداران زندگی میگیرند و زنان هستند که زندگی می بخشن. و اتفاقا تلایی ترین و بیادماندنی ترین دیالوگ های این نمایشنامه هم متعلق به همین مفهومه ساختار نمایشنامه هم مثل بیشتر کارهای بیزایی متمرکز بر روی شخصیت هاست تا فضا و دکور یا حتی نحوه اجرا بیزایی در صفحه ابتدایی نمایشنامه و توضیحات صحنه عبارت فضای خالی رو ذکر کرده که نشاندهنده سحلگیری بیزایی در تراحی صحنه و نحوه اجرا برای گروه های اجرایی داره. البته احتمالاً بیزایی به این مسئله آگاه بوده که روایت قصه و شخصیت پردازی اونقدر قدرتمند هستند که خودشون در سازی و اجرای نمایش نامه اوامل رو هدایت کنند. توصیفات بیزایی از کلات که مشخص نیست اشاره به شهر کلات در خراسان داره یا معنای لغویش یعنی و بارو البته من خودم معنای دوم رو به واقعیت نزدیکتر تر توصیفات بیزایی از این شهر اونقدر قوی و تنینده شده در ساختار داستان هستند که تخیل مخاطب را مجبور به فضاسازی شهر حتی در یک فضای خالی می کنند. یا اشاره های بیزایی به ویژگی شخصیت ها با وجود تعدد شخصیت ها چنان دقیقه که یک اجرای متوسط میتونه مخاطب رو با اونها آشنا بکنه. اگر این نمایشنامه رو دوست داشتید، حتما نسخه اصلی اون رو تهیه کنید و بخونید. ما سعی کردیم چیزی در روایت از قلم نیفته، اما با توجه به اینکه تعداد ها بالا بود، مجبور شدیم به بعضی از شخصیت‌ها مثل سرداران تویخان کمتر بپردازیم تا شما سرنخ قصه رو لابلای اسامی زیاد و ورود و خروج‌ها گم نکنید. بعد از خوندن متن اصلی به خوبی متوجه تفاوت های زریف تمام کاراکترهای قصه از نظر شخصیت پردازی خواهید شد. با وجود حضور این همه شخصیت در قصه به سختی میشه اونها رو تیپ معرفی کرد و واضح بیزایی تمرکز ویژه‌ای روی پردازش شخصیت داشته. تکرار چند باره من هم ناشی از همینه. از و کلماتی که در این قسمت به کار رفت کلماتی بودند که گاهی ریشه ترکی داشتند و ترکی بودند یا برای من ناآشنا بودند سعی کردم تلفظ درست و ادای درست اونها رو برای اجرای هرچه بهتر اپیزود یاد بگیرم اما بازم اگر خطایی بود امیدوارم از لذت شنیدن روایت کم نکرده باشه اسامی هم همینطور که شنیدید اسامی ترکی بودند که اتفاقا بیزایی با دقت به معنای اونها انتخابشون کرده من سعی می در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پادکست هم معنای اسامی و هم تحلیل های بیشتری از این نمایشنامه رو قرار بدم تا صحبت از اسامیه باید تشکر کنم از مهراب قاسمی آذر که تلفظ درست اسامی رو به هم یاد داد و معنای اونها رو هم برام توضیح داد به امید روزی که هنرمندان برجستهی مثل بیزایی فرصت کار و فعالیت در کشور خودمون رو پیدا کنند تا ما از شانس هم نسل شدن با های بزرگی مثل استاد بهرام بیزایی بهره ببریم در پایان از امیر تهانی که در تولید این قسمت همراه من بود و متن رو با دقت زیادی نوشت ممنونم از شما هم که تا انتهای اپیزود همراه من بودید سپاسگزارم امیدوارم که سالم بمونید مراقب خودتون باشید من مهدی هستم و شما قسمت 18 هم پادکست الف رو که در شهریور 1400 تولید شده شنیدید تا قسمت آینده این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتنید کست